الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاخرین و معصومین و معصومات تعالی و اللهم که از برای داد سود مصادری رو برایمون توضیح اعتراض فرموده بودن هر بر اینکه این, این مصادر روشن بشه مقدار کلمات متاخرین از ایشان رو حالا به عنوان شرح کلام ایشان چه مناقشه با کلام ایشان طرح بکنم هر سو میوه‌هایی که مثلا دست در اینجا یک چون شده یک فرمودود داد اشکال که بود رو بعد یکی شمدین عبارت بود بعد اون فرمودود در عمل اراتب ره پس شد که از آقایان این دو تا یکی گرفتن همون عمل گرفتن بعضی ها به عکس همون متابعت گرفتن و رو و, و عمل رو یک مرحله خاص از متابعت حساب کرد ظاهر عباره که کفایه عمل رو این ببین الله این مطلب و این لزوم متابهه یا لزوم عمل بست بس بره این به معنی حجیت بست پس یه نظام بست راجبی این مطلب شد یه نظام بست راجبی این مطلب شد تا این حجیت ذاتیست یا این لزوم عمل ذاتیست یا ذاتیمی یه مقدار راجب این بحث شد از کلمه ذاتی رو شکل به کار نبارد از گفت لرمه به ترید این کلمه به رو زاتی من و به ذاتی محمد کردن ادهیم ذات تریدیت رو ذات یا ذاتی غرض یه مقدارم بحث در این جهت شد یه مقدارم بحث در این جهت شد که چون حجیت تریدیت ذاتی به عمل میشه چون اسانو میبینه فقر فیده کرده اینکه که گوشت فرگوش حرامه مثلا چون واقعه بود یه مقدار راهشون این بود مرموم آزیان گفتن که واقعی که از طریقه اماره باشه از طریقه همهاره باشه این صفحه در از. با تفسیری دیگری که داشته یه مقدار چون مرموم شیخ فخره کردن که اطلاق و خجز بر از درست نیست مطلقاً بعد از باید ایشون رو خجت مطلقا تربیه کرده مده آین رو برداریشان بیشتر بوتن خجت به اصطلاح منطقی این مدار باز بخصوی این شد تا اگر افلاق به معنی درست هست یا درست نیست میشه باید افلاق خجت برای همه های زنیه میشه افلاق کرد مثال همه آلا مزموم کنگی از کلو از تره یه جب یه مرداد باز آقایان بحث روی میکردن که روی همهاره زنیه اطلاق و قجب که مرحوم شیخ برمیده هست درست هست یا درست نیست و باز هم در خود کلمی قجب بحث شد که آیا قجب دریجا به چه معناست آیا به معنای و عذره به تحبیر مرحومه های حراقی یا معنای هنجزیت که اینشالله در کلمات مرحومه هستانی یا به معنای به اصطلاح تطریم کشف الاخر احتمالاتی دیگه بودش که خیلال این بحث ندار روشن که ندار روشن تر خواهد شد یه مهدارم بحث بعد از این مهدار کردن که اطلاح و وجهد و قطعه موضوعی صحیح هست یا صحیح نیست این مهلت های بحث بود کل مهلت بحث در این جا بودن بسه خب کلمان طولانیه یه مهدارشم خوندیم یه مهد مؤلفانش رو که مرحوم مولانا انصاری بود خوندش و در مناقشاتی که شد تا حدی مطلب سعی کردیم رو بشه که ان در آتییه های روشن خارج بشه بعد مرحوم کلام در کلام مرحوم محقق اسوانی بود ایشون فرمودن که حجیت تقریری است اولا ایشون فرمودن که ذاتش توریهیت خود ذاتیش نیست باز در جای نوزاتی تغییر کردن این بیرون شده تغییر ها مختلف بعد ایشون که این تغییری از آقر نیست از طرف شاهر لا به ماهو شاهر جاهر ممکنان و خالق و مقده ممکناز لا به ما للمون نسمت اول شخون دیم که به عنوان جاهر ممکنان یال که میشه تصور نکردم در این دوره مثلاً ذات یک حد جعل ادابی باشه. خودش حدش همچنین که جعل میخواد. تا بعد جعل حکیمی در اینجا مطرح نیست از ما در اسلامی چند سال قبلی این رسانه آدم دادیه بوده یازده. بعضی ها و هم ما آدم القاییه و مطالعه رو اشاره جهل اثر خدا رو انشاریت که مثلا خدا رو کنش قرد نداره جهل محبول و من منگی صحور و شاهده بود جهلش پس رو در خوب جمه اینجوری مثلا قرد سیداری کردی که او شفرگوش حرامه اون وقت مرد سهرامه یا اگه قرد سیداری حرامه اون وقت مرد سهرامه حلاله حیث و نگیزیت شاریه غیر و حیثیت جایلیه خیلی حالا اولا برده شرارن از کردم اون نقصه احساسی که در بحث از در اینجا بحث و یا روزون و یا ترتیب آثار یعنی اون بحثی که ما این روزه به اصطلاق این روز در این محبوب محبوب میکنیم یا به اصطلاقات ما در اعتبارات قانون وقتی بحث در اعتبارت و خانون جمعید اختصاص به و رو به حفظه آلا نداریم جایل ممتراز نداریم این آقاییون تنه ذهنیتشون رفته رو مسئله شاره و ما شاره شارع مثلا ما به مقدعا خاله یا به عنوان و جایل و اونقدر و مشبر نه اینجا بحث در در جیمه بس اساساً یا روزو من ملعبا که قرار که به قاعده بست اساسا یا اقلی قرار بست خدا جرد شرگی و اینها مفرح نیست میکن خب اینها کردند کردن میگه مرازه میفرمه یعنی به قاعده اخرا بحث اقتدارا اینجوریه که پر که این داره یا رو جیه درمی داره آیا این خودشیت قابل نفیه هست اصلا مغنم بگیه شما خواهد از از این یاها هم حاصل بیشه غیر از این یاها منفیه قبول ندید اگه از بنا شدید در سیره اوغلا قبول بشه یا نشه شارع تصورتی نکرده همون سیره انگاه شده مردم شده قابل نفیه نیست آزوی هم قابل رده نیست قابل نمیست از فرم ازدهیت رو میگن قابل من این این و این بحث از وقت بعد از شیخ شده فیده کرد هم به شم اما بعد از شیخ شده از فرم از اکثر از خواه هم بزنیت قابل من نیست میتونه شارع بشید تیگه قرد داره که گوشه خربوشه حرامه دیگه تو از این قطع درست بردن اینا تصورت رو نیگه شرا ازدهی کمی قائل هست من رو محفظ قائل. بعد از شما میده بایدشون که خودمانا بوزن رو اما از سریعت از زمان میشه قاعدن که قابل رد نیست این قابلیت رد حساساً بحثش در زمینی و اقلائیست و هم مثلا هم همین بگیم همین سریعته رو رفته این به عبادت دیگر، ما ما بحث انجام در اعتبارات قانونی، طریقه اقوالایی در بحث تنجز یه طریقه نیست که دازم مجال صفات نفسی مکلفی کشید که به افتادی هر جمعه از جراسیم این موگه من خرک من کم این میگه من خرک کردم. این با انتجام قانونی نمی سازه انتجام قانونی به این از که را خواهی تنجز و هم محلولیت ایجاد بکنم باید فرزن به هم سفاظ نفسی افراد حسابتن بیت در این محدود یک کچا بید مثلا سفاظت آور ما قرض در باید اعتباض قانونی حسابتن به نحن موجودی بس بحث که قرض تری قرض اونجا موجودی و اگر هی که قرض سیدار کرد قانون پرض تا موجود موجود خارجی شد مهده کار قانونی است قرض که کرد به خوفی آقا شاره و مقدمه و قانون یک میریات معرینی رو تا ننظر دراب معریین که اینقط شما اابشین باشه روشین بره مقدم توین باشه. زی ونا هاجن باشه ده در دم خصائص فردی رو ملاحظه میکنه که میش خ رو کلا رو کللا لح 10 درصد فردیه از در غروم طبیعی سی من خطرص فردی کلا هر میکنن در مثل یا ها، اینشون برای دا به خاطر ترویج علم باشه. برای رضا هر دانشمند فیزیک می‌خواد این نظریه تئوریه علم رو بیان بکنه این واسه تعریف بکنه من 10 تا آزمایش کردم 20 تا آزمایش کردم 30 تا آزمایش کردم این آزمایش‌های برای اینکه نشون که این مطلب در تاپ وجود داره در ذهنیت من و برداشت من نیست تکرار میکنه میگه این این داره حাজার واقعی نیست که تصویر زمینه هم باشه الان در علوم در فیزیک در شیمی حالا نیاز داشت که این نقطه خاص داره که جاش رکھتےش میدونیم باشه اما در این علوم طبیعی سعی داریم که تا نوع تا 100 درصد رو از خطاها طبیعی خارج کنیم بنابراین این که مثلا فرض در فیزیک چیزی که قانون ایناست چون است این که فیزیک و ارتش ش اووض میکن در دانشگاه اعلمی به گفته بافت با درشکن اون من در به درد میکنه. خودش باید تک باها خودش آزمایش های خودش آزمایشا کهن حتی اون فرراوان بوده تکیل شده خودش باید دیگه یه برازه و در نتیجه بهظ فردی من این دورور اونجا اون آزمایش شد من این فکر میکنم. این من میکنم. این من میکنم و این کنم میکن زیاد میشه میشه انجام میدن. اون موقعی مختلف شما این همه کارها رو میکنن در اینکه از اجزای فیزیک خیال دارن بدون اینکه محن خوبه که ما نباید خودش تجلی بکنه خودش توکنش بشه نه اینکه اما در موارد قانونی طور نیست همین شما وارد قانونی تو اثر قانونی اینجور نیست ما نه اجازه یک وارد اینو که وارد قانونی 100 درصد خارج بفربیه اصلا ما باهایی در اینجا درسته برای این طور هست که اتباه خب این مشکل الان میزنان توضیح دادن شون اوام برای که مصول قد خیلی آسانه و قد اوام محکمتر از قد اخواسته آله نا وجد نا آوام آله آله خب اون خیلی قدیقه یعنی اوام شکل راحت مراسلشون پس اون زرگوشتی ها جسم خیلی راحت میگن شاید اون راحتی که ما که مثلا میسی بخواهیم معرمزان بر اما همین را هر میگه یعنی مناقشان تایر او سن در تفکرات عوام وصوله هر چیه آسانه چون این یه تابقه هزار ساله دوزار ساله تا هزار ساله اینا وجدناتی که ویژان ویژانی ها تویزه برحانی ها تویزه ویژانی ها تویزه از برحانی ها تویزه اینا وجدناه آقاانه ها از خط همون پر اثر جزه به اصلاح اون هر همه از خدا و شاید ما و به نظر خروج از بحث یعنی مواحث رو خیلی بردن خارج از جامعه و خیلی بردن با جامعه نبود این مواحث رو تو خود متن جامعه تو خود متن ارد بله اگر پسری از قول و پیر آن این مثال هست از قول و از قصد اگر از قصد رو اول به منجرده همین یا نان یه خرید باشنه فقط اصلا پس بده یعنی یکی در خونه زدم من فرضاً پدرم به اسم اون نام داره چه رفت بده از من جدا بده فرضاً اون نان تایید کنه رفتی باندیر رفت. این بحث در حقیقت اینه حالا مثلا در اسناد کلمات ایشان هم یه کلمه کلمه مناقشه با خودم و اهل بعد ایشون میگه زهینه از نقول اگر بنا شاره چک شارع چه تسرب درو میکنه این طور میشه مثلا میگه اگر تو خطا ایجاد این که دوشتر دوش حرامش حاله تصور بکنه بیا حالا که قرط به حالا حالا یا بیا حالا که حلاله این نره حکم مجهوله ثانیه سواء اون سواء این شاکره کان امکان معافی انده ما تعلق به القرط او مخالفا لست یوجه اجتماع مثلی سل اول و اجتماع از دن اول متنافضه چون نسبت از اونتا سلویجاب باشه یا هم بین وجودی این باشه که فی نظر واقعی در نظر واقعی اینطوره و نمیدونه این عمل واقعیه اگه در واقع نباشه واسه در نظر واقعی اینطوره این نکته این ای که ایشون فرمودن این معنی داره ای که این قرض در اینجا تریه سر باشه که من هم شما قرض پیدا کردی گوشه خرده حرام من میگم حالا که قرض پیدا کردی حرامه یا قرض پیدا کردی حالا حلاله عمل به قرض ادن کنه و کفا به مانع. این مانه این که جمع بین مثلیم لحده میتمک کند بعد تصدیقی مکلب اینجا تصدیق بکنه به مثلی او بعد تصدیقی قبول داشته مثلش هست یا زدش یا نقیزش فلای او قلبن البحث و الزر لعنه همان جال جال دایی چون بحث زن به دایی بخاطر جال خاطر من توضیحاتش عرض کردم مرفعوز استحالت او این نظر مطلق خب ببینید این ذهنیت چی بوده ذهنیت این بوده که شما فرض بگذار از این بیاد یک حکم الیگش بکنه یا مثل او یا ضد او این لغمیات اینا دیگه اثر عملی نمی شه نظر او یا اجتماع مثل این یا اجتماع نقیض این اجتماع شما این, این موحال را عقل در نظر او موحال در واقع ناروژه نظر او ببینید دست این میز البته شن این بزرگان عجل در از این که ما بخوایم چون بعد میشونه عبارت این داره که خودیشان محتفظ شد اصلا دست تر این میز حسولا اگر به طریقی صرف باشه اصلا معنا نداره امکان نداره جعل زدش اصلا معنا نمید. اگر کسی هم قائد بشه بگیم که جعل زد میشه قطعا با قطعا اینجا موضوعی بگیم قطعا دیگه نمیشه چون قطعه طریقه هیچ فار نمیده فریش هیچ فار نمیده وقتی شما قرض داریم به حرمت این طریقه صرف اصلا بهش التفاظ هم نمیشه نمیشه در اون واقع چون با قول محبون داره این انسان واقع رو باز بگه این حلال همو میکرسن حالان اگه در اینجا باشه این مرار موضوعی طریقه اینستیشون پسر گرفتر بوده حدس الله و نه سهان ازه ه اصلا بستر این میسار بنا خودشون تنباه میکنه میگویم اصلا بستر جهل بکنی مواصل جهل بکنی موزار نیستن بستر اینه که مقندم دیگه من با این صفت شما تنجز خواهد نمیدونم بستر اینه اصلا جهل نیست بستر جهل نیست مواصل رو چه خود داره یا آتر کجا در فیضا کردی از خیاضی من این رو را راه تنجز خود میگویم یا حالا ذاری بحث عارض شده که صادر ارث شد بحث اینه که آیا مرحله تنزیل حتا در اختیار موکل یا یا مقدمش نظر بده یا بهش نظر بده مبنى قرار بکنه شنعه است که این مرحله عملی مرحل جعل این شاید این که صد در صد اختیار مقدم مراحل بعد از جعل یک مرحله مرحله ابلاغ سال رسول و انزال قصبه که ما اسمش فله یک این در اختیار مقدم و ارسال او میکنه او که قرار می مرحله بعدی تنجج له این مرحله تنجه فقط در اختیار مکلفه مثلا قصد بذارسه تنجج یا تو این مرتبه هم مقنن حقی داره قصر اینه بعد جلب و مواصل و متوال بذاری داره ایناست که اولو کان آوا و قال ناجت خیلی خوب دوستی آفد. پدرانم شون این کاری شده. شما قصد داشت. اولو خانه آزا اون روی هر کنیم. لای علمونی شد. روی هر قرآن این راهی نیست که شما اعتماد بکنید شما به جای اعتماد به حالات نفسانی و خودشون. بحثی از مدارک اون حالات نفسی بکنید و یزا ارد کردیم که در قرآن نظام لا یعنی حقی شیعا زن در اینجام نبیبنه ادراک درصد، اشتر درسته ممکن ادراک 70% باشه از 70% هم بالاته مراد از زن در خیلی از موارد قرآنی و اقتعمال ها مراد اون ادراکی که زیر بنات ضدیفه خود زن ارد کردم تنوست در ادراکی منعنی زیره در لعات عربی حالا حالا کلام این بزیر شکر اون ز و ما ها به همه غیبه بغنی اونجای بستی کردیم توی بست زن آن اینشالا خواهده ظاهرن جزا شکلی متقارب باشن غنه با غاد و با غا و این اساساً اساسش زیغه اساس شکل نیرون معنی اجنوزیه ایمان بسور ادراکی که قاصر باشه و زیغ خوش باشه رو بند نیرزیم دسته سد در سد و نمید حالا اگر ادراکش نما یک امره وهمیه امره خیالیه خب اونه ولو علفه بکن ولو یقین بکن ولو در علوم طریقی باشیم یقین بکن فرصوی در علوم قدید در قدید تعین یقین داشتن که خوشی دو رو زمین میدار خب بگرم سوال سری یقین نیست. هزاران کتاب بر این اساس نوشته شده اصلا آیات قرآن بر اون اساس تذکیر گرد بعد منظور که خیلی زمین بود دو زمین نمیشد اون قوانه اجازبیات و غیره نحوه وجود شکل دیگه است این مناقب نداره چون یعنی که این یعنی چون زیر بناش دریفه اسم زن زن بناش ادرافی درجه ادراف میگه اشتباهی که برای سر خلق اصطلاحات منطقی با الفاظ غرفی در غرف قرآنی زن بگیم ها تو برها نکن اون برها ما انظران باقاها با من سلطان اون سلطان مهم بعدی که این یونانی ترجمه شد به جای کلمه دلیل مثلا حجت آوردن قران به جای اون برهان و سلطان رو نام میبره این اصطلاح قران از تو حجت تک حجت نوا و تنوعی که حجت در قران به کار برده شده پس این اصطلاحات ای قرانی که به نظر من باید کار کارکردش فکر کرد و روشن بشه پس زن در مقابل برهان در مقابل سلطانه جایی که انسان سلطه علمی نداره ادراک او در حقیقت قاصر ادراد ادراک او پیدا کرد و زیر پیدا کرد این ادراک زن است پس این بحثه که مثلا تعجب واه این بحث کجا بردن شارع نهی بکنه جعل حکم جدید بکنه جعل حکم نمیکنه شارع این نیست ولی بله نتیجه الغایش این است که متاهیه تو یقین پیدا کردی گوشت کرد و شرامه اعتماد بیهن یقین مردم نخیر بین این را چون یقین را از رای خیاس اعتماد که علیه اعتماد مردم مضافن الانه ها ازنان به صورت مخالفه اگر این سرشینی ها یا محصیت اگر مصابقه واقع باشه محصیت به ازنان تجربیس بل از تحدیر انه هدیث از تزار و از تماسل اجنبی و این در اجنبی یا نهما میانشون در زنین جخون این بحثی است که تنافض و تضاد در افکام چی جوری هست ای ظاهر افراش میشه واقعی یعنی خودشون اصلا جعل قرمت با جعل حجوب با جعل عبانه میشه تضاد بزن بحث این که تضاد در امور حرگیجی میادنه امور اعتباری هستن در امور اعتباری تضاد معناه دارن لذار ازده ای برداشن تضاد در افکام و ارجاع دادن به, به این معناه که بینن ما بینال احکام و انسخه ها تضاد نیست تناقض نیست تماسل نیست این هم تضاد به لحاظ مبدأ یا منتهاست مبدأ و من منتها رو باشه با. اما به لحاظ مبدأ به اصطاده به لحاظ ملاقه هاست اگر واجب شده باید ملاقه وجود داشته بشه اگر حرام باید ملاقه ببارونست این ملاقه ها با هم جمع نمیشه این یک ملاقه من از کردم گذر این شا. سه تا مبادی داره و سه مرحله متأثیر داره کراهن ازگرمه مبده اولش ملاقاته بعد اراده خوب و بوده بعد اراده و کراهن این سه تا قبل از جهل بعد جهل میشه سه مرحله هم بعد از ارسال رسول یا فعلیت بعد مرحله تنجز اصول و مکلت باشه بعد مرحله این چه سال میگن تو مرحله جهل احکام با هم هزار ندارن هزار کجاست تو مرحله مبدل مبدل این ملات ها نیموشه و حجوب با ملات و قرمت جمع بشه مرحوم آیه برده مرحوم آیه اسوانی میگه سوا مکنم به معنی اراده و کراحه اول بحث و درست کشون مرحله اراده و کراحه رو گرسن حسین اراده و کراحه فقر تفسیر ما مرحله دومه فقر این تفسیر اول ملاقات، بعد ببغضه بعد اراده و کراه بعد جل ایشون گفت سوا امکان اراده و کراهه به مرحل تصور ما این مرحله سورو می کنم بزمودن اول بعد و زجل اعتباریه این مرحله چهارمی خوده این خود, این, خود این مقام جل بعد میگه تضاد نیست و این نحوان منصفات الاحوال خارجیه للموجودات خارجیه پرای امور حقیقه تراجه بعد ایشون ازگاه دیگر میبارد شدن حالا من نیمخواب بایدون باید بست بشن فهر حال اون چی که الان بیشتر در از کنه ای این اصحاب میاد که این تضاد در تنابض به لحاظ مقام مبدع یعنی ملاکات یا مبدع به تغییرشان یعنی اراده و کراه. با منطقه ها منطقه های مقام از منطقه ها اون مرحله هستان رو تعبیره ما یعنی جهر وجود و خرمت برای یک در دو جا با هم ثقاف بدایم یکی تو ملاخ ها چون اون شیشه هم ملاخ و وجود داشته هم ملاخ یکی هم تو مرحله انتصال اون مرحله آخر چون بلکتر انسان چی انجام کنه اینجام بده یا نده گفت هم بازی فرم هم هر آخو اظاطشون از اوغله انتصاب این از اصطلاحاً از اسمش هم مبدا و منتها حالا یه بحث دیگه هم هست که ممکن است مثلا تصور کنیم ملازم مغزع و انتزاج نباشه خیلی بحثه در اینجا میشه انجام داد خود مفهوم ماهیت انسانی از جای دیگه رفتی. حالا این بحث فرنده رو بزنیم برای تعریف انسان رو فرندهش رو در نشون نشد تو ما این بحث خیلی به ذهن ما بیشترین نکته ای که در میروه هست مسئله عدم مقبولیت در اعتبارات قانومی بحث از از مبدعاون امتقا نکنیم بحث از خود اعتبار مقام جرل کنیم و در مقام جرل بحث مقبولیت و عدم مقبولیت رو مطرح فرکدون نه مقبولیت و عدم مقبولیت این که تناخض لازم یا لازم یا معبول نیست به اما چه اعتبارات قانومی ما به این مقبولیت رو مطرح رو ما از این در به ادبی جمع بین حقیقی و زمزمه استفاده نداره یک نفر میگه این مال این عقرب ببینید رو باهرمین که این خب در خارج امکانه این جمع اینها نیست اما در اعتبار میشه خب حبیبی شمس و قمر همیشه شمس باشه مش قمر باشه اما تو خارج نیست اما در اعتبارات ادبی جمع بین حقیقی و جانب بین نسبت مرغوبی نیست. درست میگم؟ مقبوله. نمیاد محاسبه کنم. تو ها گفتی شمس از بیو یه شعری خوندی از ابن خالویه معروفش لهل بدر که از اون واهی شمسونی رو حواله هلال و مکانی در ایران موزه جننجو خب این تصویر کرده مجنونش خب بهتره ظاهرا تاریخی باشه خراب دخترین قصیده عربی در خمری ها همین خمریه معروض مینیه این فارس لحل بد رو که اصول لحل که اصول بد رو اون جامو رو تشکیر به برد وحیه شندتون خود شراب تشکیر به تشکیر به که. یودی رو ها هلال هلال یعنی کسی که صاحیه صاحی به تشکیر جام رو کرده به ماه شب اول برد خودش خودش خود خند رو کرده به خرچیت یودی روها هلال هلال رو می‌چرد که مراز صاحیه هلال پسابول کرده بعد پسابول بعد شبه چهارده ما منزده هلال شبه و کم از دو اقراموز جد نشمه وقتی که این شراب به حساب هم نخوره توش هباب پیدا شد هباب ها تشبیر به ستاره کرده چه در خارج امکان نداره خورشی رو ماه و چهارده و, شبه و, و تصویر و اینا با همدیگه جمع شدن تصوی اما همین دو در یک شعر در همه یه عوضه شعر دیبا در آمده میکنی این بحثی اعتبارات عدوی جمع بین نبیده و متضاد در او ممکن و مقبوله نه اینجا فقط ممکنه اما در اعتبارات قانونی جمع بین متضاده خصوصا یک تصوری هست که اصولا اعتبارات قانونی ری ششت اعتبارات اینها در اثر گذشته زمان تحول پیدا شد اصل لحظه حرام به من ممنوعه. ریشهش بوده، یک کسی که می‌خواد بگه حرام در کفهش نیاد. اون من تکلیمی بود. ولی این من تکلیمی تنزیلا و مجازا به کاربردش رو در من اعتباری و این معنی درجات پیدا کرد. وقتی میگه شما از این چیز ممنوئه، ممکن ممنوع با بخادر شور بشه، ممکن ممنوع رو بخادر شور باش. وایسایی کنه. با بخادر شور باش. و با باش. با بی‌نگهداریش این هی تطور که داشته آیا جمعه بیرمست زاده این در همور اعتباری جایز اعتبارات عذبی بعد هم جایز هم صحیح هم وقیفه نه اینکه باید جایز اما چه اعتبارات و قانونی مقبول نیست چه اعتبارات و قانونی شنه باشه چه به نه به به اصطلاح وضعی باشه بخواید خیلی هم زحمت بگیشیم اصلا یه مقام ملاقا به یه جوریه که با هم جمع میشن کلان چی میشه کده بزار. هر بزارن حتی اگر ما قابل به قبول تضاف توی امور واقعی باشیم مثل تفاکرات آلا فرسونی هگر و مارسیستا که این تفاکر رو قبول کردن که اشتماع برسر زمور رو قبول کردیم ما در بابا قانون بگیم مقبولی نیست شکرید اون مقبولیت توی تو بکنیم که حالا محدد مبدل چیه منطقه ها چی بیر میشه چی کارش بکنیم ممکن است یک اینجوری اینجور ممکن ممکنه این ترجیز باشه از این هر کنی که گفته شده هیچ دلیلی نداریم که اطعاب وقت اطعاب نرسون به هر حال جمع بین حکمین مختلفه و متضاده و متنابضه افعلالات از ار حرام و مفروب جمع بین این دو تا در ارتقانونی قصه ام مقبول نیست حالا بقت مقبول بعد ایشان و اما نقل رو به المهن زن القیاسی که ارز کردی مرمو محقق اراقی این مطلب رو اوگرد و جواب داده شد بعد، بله. این هم چون دیگه گفته شد یه خیلی تکار نمیتونه تقریبا شبیه محقق اراقی جواب داد اکنی کنی فرض دارن دو احتمال دادن دیگه شون خیلی مفرح نیست و بیشتر جمعه فرض داره خودشون خائل به انتداد نیستن ما اصولاً این بحث های فرضی رو اهل نمی این یک نقطه‌ای است که قراراً عرض دریم خود خود منظور معهد اسلامی که والد انتزاع می زن ذهن زن ذهن رو از واقع انتزاع حجت نمی دونه اگه ذهن رو از واقع انتزاع کنه اشکال میکنه زن قیاسی رو یا خب ممکن است آقای قابل انتزاع باشه زن قیاسی رو حجت بدونه راه نیست یعنی این به جایی این نمی رسوزه بحث های فرضی بحثی معنایی این درست نیست چون باید معنای ما ممکن این که قائل این است که زن مهاجر نه نظر که خود او ظرافت و تبیین ذره یاد بحث در این صوره خواهم برد در نتیجه در ادله و مقدمات انصدار اوجیت زن من بحث هم تبیین ذره یاد نمی که این توضیحات در جای خودشان جاش اینجاست علی پس بنابر این بحث ها رو وارد شدن با اینکه قبول ندارید اینا به جایی نمی رسانه اینها بعد ایشان یک اشکال دیگری کردن کما اندل اشکال از اجتماح مثل این فلی بحثین و اندل بحثستانی یه وجه با تأکد این در خصوص بحثین مثل این یا اگر دانستی یقین بیده کردی شراب مثلا گوشت خربوش حرامه پس گوشت خربوش حرامه این دومی اجتماع مثل این چون از چون ازواب تأکده. این بحث هم من ریشه بحث و غرزم. این نیست که فعلا می بشنه این صاحب این بحث هم امردنش توی مسائل اعتباط قانونی خب خلاف زاده تأکد در اعتباط قانون چی مرمان در سر حالا بعدیشون فرمیدن به انال غرز امکانن انشا به داعه و خلقون چون انشا به داعی برده نه به داعی تأکید و امکان خروج و و امکان بعده. خروج برده خروج برده من حد فکیه انه ها فی اون مثل اراده اما در اکباریت قابل تصور مثل تأکیب تو اعتباریت معنی نداریم ما هم در محلش از کردیم در وقت مثل نظر واجه از کردیم. کردیم اگر بخواد انسان یک حکمی رو که وجود داره یک عنوان سانوی بهش وجود بده این باید منشه اثر باشه حالا این بحثشون نمی‌کنه چون ایشون متبرد کردن من هم بگیم این امرسانی از باب تحکید تحکید تو اعتباریات معنی ندارد شدت و ضعب ندارد اون تو نور نیست اعتباریات قبل مشکفات نیستن تحکید و شدت و ضعف بود سلس. مثلا من نه رو نماز زهر بخونم اون چیه نماز روی ضعیف بود با شد. اون که معنی ندارد از کردیم اگر بنابشه که یک تکلیفی که هست یک تکلیفی دیگه روش هست چه حالا اون دومی شرعی باشه چه دومی شخصی باشه مثل نظر شرعی باشه شارع قرار بگیر تأکید رو شدت و زرف این حرفاتو شما هم نداره آیا چیه چیزی محبول هست نظر باشه من شما روشون متعرسون از اون ایشان می کنین جوابو نداره. ما این راه درست هم. ما اثری این نقصه فرمیش اینه اگر جهل سانی دارای اثری خیلی از جهل اول درسته اگر نداره بازه مبهوم نیست اگر جهل سانی یک اثری در وعای اعتبارات قانونی پیدا بکنه غیر از جهل اول چه شده جهل سانی ساله هر کدوم باید اثر بسید از کدن مدیار در اعتبارات قانونی اثری اگر اثر مترسل شو جلسانی امکان نداره چه شخصی تکلیف ثانیم داره چه قابل مثلا نماز ظهر شما باشه شما نه خودت نماز ظهر بخونید آیا این نذر شما تاثیر داره یا نه قبل از نذر بعد از نذر فرق نداره اون قانونی دیگه ارزش نداره اما اگه تکلیفش این بود لا به خاطر شخص واضعه یعنی شما الان اگر نماز خودتون که نخوندید کفاره تا اما اگر نه از کردی نماز دور بخونیم نه خود این کفارت داشت اگر به لحاظ کفار یعنی آمد منشه اصل شد اگر گفتیم نه این چه صحب نمونه کفارت نداره درداره درداره کنیش نه از واجب کفارت بشه نمیان چه من اولاده نه شارع میتونه که این بکنه نه چون درش تاکید دور شدت و ضعف که معنا نداره اگر چیزی من زوابتشو عرض میگردم زابطش رو در ذهنوارکتون باشه زابطه وجود اثره امور اعتباری چون اعتباری اعتباریان واقعی نیستن تا اثری رو در نظر نگیرید اون اعتبار لحظه نه اعتبار محاله محبوبی چرا که وجود اعتباری واقعی نیست این باعث به اعتبار درست بشه دلايت واقفيش اوغلاي واقع نقل الامر خودش گذاره نه خارجي است از اون نقل الامر خودشون هر کدام معايير علامه حواضروي در اصول فلسفه جلد اولش ي بحث ايجاد کردن الواتات اعتبار بحث خوبيه ما نقش سنخو به نظر ديما بين نواذ اعتبارات ادبي و قانوني و روق بحللاجي در اعتبارات ادبي در اعتبارات قانوني این نقطه در هر دو هست شما اگر خواستین سیده اعتبار بکنید که نقطه یک توش نباشه لغزه تو عزبیات هم برگم مثلا بگید من یک انسان هستم مثل یک انسان این مخیراتی لغزه زید فرد شجایید مثل شیر بلدیم. فرد شجایید گفت شیر خدا و رسطان دستان مهارسوز زین همراهان سوس اناسر درم اگه بخواد یک همراهان سوس اناسر مثل همراهان سوس اناسر نقطه, ای نقطه ای نداره که این باید یک نکته باشه تا اعتبار ادبی بیاد این بلااظ نکته اعتبار عدد. اعتبار قانون هم می‌توهه فقط فرضش اینه که در اعتبارات ادبی تاثیر رو مقام احساسات و خیالات و تصرف در حوزه واقعی و حوزه خیالی انسانه در اعتبارات قانونی باید یک جزایی یک اثر یک واقعیت خارج خودش داشته باشه مثلا نماز قضا این خودش اثر یه اثری باید داریش در وعای اعتبار قانون محصر تکیب اثر باشه اگر موضوع اثری نباشه لحمه اصلا اعتبار باشه چه اعتباریه شما بچه بگیدی برن نان بخر خیلو اینه اعتبار کردی حالا اگر نان نخرید خیلو خب پسرش من چقدر دوست دارم ایش فرق نکرد او یه اعتبار بگیشی لقلقه یه اعتبار باشه پس معیاد اینه نه نوزه های چیش راسته این م خروجش در شدت به شدت معنی ندارد صرفش اینه شدت و زر باید عذاب شدت, شدت و زر بکنی خود شدت و زر توی اعتبارات معنی ندارد مثلا بگه اگر شما نماز نخوندی یک درجه جهنم درک میگه جهنم و درکات میگه درجه درجه یک درجه جهنم مثلا برای شما هست اما اگر نه بکنی نماز دور بکن نخوند دکنی یک یه تأثیر باید بکنه نه اون شدت و زرف هم دلهاد اثره. دقا که. اما اگر آمچ کد اراده به اعتبار شدت نمیگیره که. و, و خود شده نمیگیره. اعتبار داره. چرا چون در یه درجه قناع رو میگه؟ نه اینکه اون اعتبار طبی میشه. به قوت و اعتبارات نیست. اثر فرم میکنه. مثلا اگر گفت که شما نماز خوندی از تو وهش اول دفعه خوندی به از الله ببین اضافه شد خوندی به رسول الله تو بهش یه اضافه که شد این که ما اسلام میگیم شدت شدت اصطلاحی فنی نیست این یه مقدار بیستر مثلا فقط یه نقطه‌ای باشه اوشاید این میونه اعتبار من مثلا سر میزان حرارت بر ده در درجه بود 25 درجه اعتبارات میزان حراره ندارن اونی که میزان واقع اعتبارات میگیم این اعتبار شدید شد یا این اعتبار زید شد درسته این رو به لحاظ اون اثر داریم میگیم این چون این روی که متعروض شدن و به نظر ما درست بودیم هم نظر درست بودیم پس نظر و لاجب نداره چرا؟ شون اثرشتی که ما کپاره بگیم تا برمیزان کپاره نمازون کپاره بگیم اینا آمدن بحث از واجبه بلااظ خود وجود گرفتن که این وجود شدید میشه ضعیف میشه نه بلااظ وجوب نیست وجود وجود بفهمونه که این بلااظ اثره اگر یعنی سر اینه تا اثر نباشه اعتبار در وهای اعتبار تحقق پیدا کند اصلا رمز اعتبار این است که باید اثری باشه بلا اعتبار نمیشه اگر اون وجود اعتباری تو وهای اعتبار تحقق تحقق امر اعتباری سو به اعتبار بیناست که اصلا نشه. تا برای خیلی نیست. این عزت بهش امر عادیه. تو ملک من، ملک شما. اینم یه اعتباریه. ملک من ببینید؟ ملک شما. اینم این اعتباره. اگه قرار بشه ملک من بشه با ملک شما هیچ فرقی با هم نداره. خب چه اعتباره ملکیه؟ نه. اگر ملک من باشه همون ملک من و شما میزید تصور کنید که ملک شما باشه هیچ فاهم نکنه خب این فاهم نکنه باید چی ملکه؟ دلست؟ اصلا ملک یعنی زاویه رو ببین جل بکن وقتی زاویه ندیدی خب جل نمیشه اصلا اعتبار نمیشه این که باید باید کلام میشه رو فرده شما